ما ایم نهاده سر به فرمان شراب جان کرده فداوی لب خندان شراب هم ساغیه ما حلق سراهی در دست هم بر لب ساغر آمده جان شراب ماییم و می و مترب و این کنج خراب جان و دل و جام و جامه در رهن شراب با امید رحمت و بیم عذاب آزاد زباد و خاک و از آتش و آب باوت می گفت ماهی در تب و تاب باشد که به جوی رفته باز آید آب، از گفت چو من و تو بگشتیم کباب، بود از پس مرگ من چه دریا چه شراب. از منزل تا بدین یک نفس است، و از عالم شک به یقین یک نفس است، این یک نفس عزیز را خوش میدار که از حاصل عمر ما همین یک نفس است.